بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازم اکربان نهایت بارش حامیم و قسم به این کتاب واضح این را قرآن عربی گردانی تا به مطالب آن پی ببرید بدون شک این کتاب در امل کتاب یعنی لوح محفوظ نزد ما بلند پای و سرشار از حکمت است. آیا به خاطر اینکه قوم اسفکاری از شما پند یعنی قرآن را بکنار زنیم ای بسوز پیامبران را که در پیش نیون به ایشان هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را استیزامی کردند. پس آنهایی را که از این مردم قریش در قوت خود سختر بودن حلاک کردیم و داستان عجیب پیشینیان گذاشته است و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید یقینا میگوین خداوند صاحب قدرت منی و دانا آنها را آفریده است ذاتی که زمین را برای شما فرش گردانید و در آن برای شما راه های ساخت تا باشد که رحیاب شدید و آنکه از آسمان باران را به با مقدار معین فرو و با آن زمین مرزه را زندگی وخشیدید شما نیز به همین منوال در قیامت می میشید ذاتی که همه اشیا را جوره ها فریده و برای شما از کشتی ها و چارفایان چیزهایی را که بر آن سوار می شوید ساخت تا بر پشت آن آرام گیرید سپس چون بر آن آرام گرفتید نعمت پروردگار خیش را به یاد آورید و بگوید پاک است آن که برای استفاده ما این مرکوب را رام ساخت و ما خود به تسخیر آن دسترسی نداشتیم. و ما بیگمان به پروردگار خود بازگشتنی هستیم. اینها در برابر این نعمت ها برای خدا از بندگانش جزئی قرار دادن. واقعا که انسان به گونه آشکار ناسفاس است. آیا او از آنچه میافریند دختران را گرفت و شما را برداشتن پسران برگزید در حالی که اگر با یکی از ایشان همون چیزی مجده داده شود که برای خداوند رحمان مثال زده شده است رنگش سیاه و چهرهش غضب آلود می گردد. آیا کسی را که در زیوار پرورده می شود و در جنگها حضور نمی آبد با فرزند خدا نسبت می دهید؟ و فرشتگان را که بندگان خداوند هستند زن و می سازند آیا آفرینش آنها را مشاهده کردند؟ یعنی در هنگام آفرینش آنها حاضر بودند. این گواهیشان ثبت می شود و از ایشان بازخواست می شود می گویند اگر خداوند رحمان می خواست ما ایشان را پرستش نمی کردید ایشان به این امر علمی ندارند و ایشان جز گزاف نمی گویند آیا پیش از این به ایشان کتابی داده ایم که به آن چند زنیم این دقیقا از آن پیروی می کنند نخیر بلکه می گویند پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما نیز بر نقش قدمشان ره یافتیم به همین منوال پیش از تو در هیچ قریه بیمدهنده را نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگزران و عیاش آن گفتند بیگمان پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما یقیناً بر نقش قدم ایشان روانیم گفت آیا حتی اگر طریقه بهتر از آنچه پدران خیش را بر آن یافته اید برای شما آورده باشم گفتند بیگمان ما به آنچه شما به ابلاغ آن فرستاده شده اید کافر لذا از ایشان انتقام گرفتیم پس بنگر انجام کاری تکذیب کنندگان چی بود؟ و باید آورید که ابراهیم با فدر خیش و قوم خیش گفت واقعا من از آنچه شما می پرستید بیزارم مگر آن ذاتی را که مرا آفریده و او یقینا مرا رهیاب می سازد و او این دعوت به یک را در میان اولاد خیش سخن پایا قرار داد تا باشد که ایشان به خدا رجوع کند بلکه من ایشان و پدرانشان را بهرمند ساختم تا آنکه دین حق و پیامبری که در حقانیت او هیچ شبحی نیست آمد و چون دین حق به ایشان آمد گفتند این جادویست و بیگمان ما به آن باور نداریم و گفتند چرا این قرآن بر شخصیت بزرگی از یکی از این دو شهر نازل نشد؟ آیا ایشان رحمت پروردگار تو را تقسیم میکنند؟ کنند ما روزی شان را در میانشان در زندگی این دنیا تقسیم کردیم و بعضی ایشان را از نظر درجات بالاتر از بعضی دیگر رفعت بخشیدیم تا بعضیشان ایشان بعضی دیگر را به حیث تابع و فرمانبردار خود بگیرند و مرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه ایشان میاندوزند و اگر چنین نمی بود که مردم به شوق مال و دارایی امت واحد می و با کفر و فساد می شتافتند برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند از نقره، صحفا و زینه که بر آن بالا روند می و برای خانه‌هایشان در دروازه ها و تخت که به آن تکمی کردن می و سامان و آلات زینتی از طلا می ساختیم و این همه چیزها جز متای زندگی دنیا چیزی دیگری نیست و آخرت در نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است و هر از یاد خداوند رحمان روی بر با او شیطان را همراه می سازیم که با وی هم نشین می شود اینان شان یعنی هم نشینان از راه باز می و این گمراهان چنین می پندارند که ایشان ره یابد. تا اینکه چونی یکی از ایشان نزد ما بیاید به هم نشینی بد خود می گوید ای کاش میان من و تو فاصله بین مشرق و مغرب می بود چه هم نشین بدی امروز با شما این سخنان نصفیه نمی زیرا با خود ستم کردی، اینک در عذاب شریکی. آیا تو می توانی کسی را شنواب بسازی یا کور و آن کسی را که در گمراهی و زهز رعیاب گردونی؟ پس اگر تو را ببریم هم از ایشان انتقام گرفتنی هست و یا اگر چیزی را که در مورد ایشان وعده کردیم به تو نشان دیهیم به هر حال بر ایشان توانا می باشی. از این رو به چیزی که با تو وحیه کردی محکم چنگ بزن تو واقعا برای راست بی باش حقا که این قرآن برای تو و قوم تو یاد بود پیامیست و بزودی در زمینه مورد سؤال قرار میگیرید. گیرید پیامبرانی از که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا جز خدای رحمان معبدان دیگری را مقرر داشته ایم که پرسته شوانیم؟ بیگمان موسی را با های خود به سوی فرعون و کلان شویندگانشان فرستادیم و گفت واقعا من پیامبری پروردگاری جهونانا چون به ایشان با های ما آمد با آن استهزاء می‌کردند ما هیچ معجزه‌ای را به آنها نشان ندادیم مگر اینکه از معجزه همردیف خود بزرگتر بود و ایشان را به عذاب گرفتار ساختیم تا باشد که برای حق باز بازگردند گفتند ای جا دوگر به خود نظر به عهدی که با تو کرده برای ما دعا کن بیگمان ما رحیات خواهیم شد چون ما از ایشان عذاب را دور ساختیم بیدرنگ عهد خیش را شکستند فران در میان قوم خود نداد داد و گفت ای قوم من آیا پادشاهی مصر از آن من نیست؟ در حالی که این جویبارها از زیر قصر من جریان دارد، آیا نمی بینی؟ من بهترم از این کسی که خوار و زار است و سخنش با مشکل فهمیده می شود. اگر راست می گوید پس چرا دستبندهای از طلا بر او انداخته نشده؟ یا با او فرشتگان صف شده؟ نمیآیند بدین این ترتیب وای قوم خود را چنان به ابلهی کشان تا او را فرمان برداری کردم. بگمان ایشان مردم فاسقی بودند. پس چون ما را به خشم آوردند، از ایشان انتقام گرفتیم و همه ایشان را غرق ساختیم و ایشان را داستانی از پیشینیان و نمونه برای عبرت آیندگان ساختیم و چون ایسا پسر مریم مثال داده شد ناگهان قوم تو از آن حلحله هل شادمانی دادند و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او این مثال را نزدند مگر برای مجادله آره ایشان مردم خصومت اندوده اند او نیست جز ای که بر وی نعمت ارزانی کردیم و او را به حیث ای برای بنی اسرائیل قرار دادیم اگر بخواهیم البته به جای شما فرشتگان را بیافرینیم که در زمین خلافت کنند و ایسا نشانه است برای قیامت پس در مورد قیامت شبهه نداشته باشید بلکه مرا پیروی کنید این است راه راست و نباید شیطان شما را بازدارد بگمان او برای شما دشمنی آشکار است انگامی که عیسی با معجزه ها آمد و گفت با سخنان حکمت آموز به نزد شما آمده ام و تا برای شما برخی از آن نکات را که در آن اختلاف دارید روشن سازم بنا آن از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید بیگمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستی این است راه راست پس گروه ها در میانشان اختلاف ورزیدن پس وای بر ستمگاران از عذاب روز درناک آیا جز قیامت چیزی دیگری را انتظار می قیامتی را که ناگهان بر ایشان بیاید و در حالی که احساس نکنند، دوستان در آن روز بعضشان دشمن بعضی دیگرند، جز پرهیزگاران ای بندگانی من، امروز خوفی برای شما نیست و نه هم شما اندوهگیم آن آنهایی که به آیات ما ایمان آوردند و فرمان بردار بودند شما و همسران شما با نهایت اعزاز و اکرام داخل بهشت شدید دم بدم ها و آشامیدنی با کاسه ها و سراهی های زرین به ایشان پیش کرده می و در آنجا هرچی دل بخواهد و چشم از آن لذت برد محیاست و شما در آن و سر میمرید. این است تومان به که شما در برابر اعمال نیک خیش آن را به میراث گرفتید. برای شما در آنجا میوه فراوانی که از آن میخورید. بگمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه می‌مانند. عذاب هرگز از ایشان تخفیف نمییابد و در آنجا در ناامیدی کامل به سر میبرد ما به ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان ستم ستمگار بودند و فریاد می کنند که ای مالک یعنی خازن دوزخ باید پروردگار تو بر مرگ ما حکم کند مالک میگوید گوید نخیر شما در اینجا همیشه به سر میبرید برید بیگمان به شما دین حق را آوردیم ولیکن بیشتر شما از سخن حق کراحت داشتید آیا برکار تصمیم قاطع گرفته ما نیز در مورد ایشان تصمیم قاطع گرفته هیم یا پندارند که اسرار و راز و نیازشان را شنویم چنین نیست و فرستادگان ما یعنی فرشتگان نویسنده نامه اعمال با ایشان اند و کردار و گفتارشان را می نویسند؟ بگو اگر خداوند رحمان فرزنده می داشت من نخستین پرستندگانی بومی بودم پاک از پروردگار آسمان ها و زمین صاحب عرش از وصفی که ایشان با او نسبت می کند پس ایشان را بگذار به امور بیهوده و بازی مشغول شود تا به آن روزی که به ایشان وعده شده روبرو شد اوست که در آسمان ها خداست و در زمین خداست و اوست خمان صاحب حکمت و دانا مبارک است ذاتی که پادشایی از و زمین و هرچی در میان آنهاست از آنی اوست و علم قیامت در نزد اوست و به سوی او بازگردان رمی شوید و آنانی که با ایشان جز خدا نیایش مالک شفاعت نیستند مگر برای کسی که به حق گواهی دهد ده و ایشان می دانند. اگر از ایشان بپرسی آنها را کی آفرید یقینا می گویند خداوند پس چطور ایشان از عبادت او به کنار زدن ایشان؟ و خدا از این گفته او یعنی پیامبر آگاه است که ای پرواردگار من که اینها قوم اند که ایمان نمی آورند لذا از ایشان روی برتاب و بگو سلام به زودی می دانند.